اعوذ بالله من الشیطان الرزیم بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد شروع کنیم بحث ابن را اللهم علی محمد و آل محمد بعد از بحث مقدمه بعد از بحث مقدمه که در مورد ضرورت بحث از سیره اغلاییه بحث کردیم و همچنین چند تا اصطلاح را مورد بررسی قرار دادیم وارد فصل اول شدیم فصل اول اقسام سیره اغلاییه را میگه که دو قسمه آقای کوزری سیره هایی که ازش در راه استفاده حکم و اثبات حکم استفاده میکنه. یک دو سیرهایی که به موضوع ربط داره میگیم به موضوع ربط داره چون خودش دوباره چند قسمه اون که به موضوع ربط داره خودش دوباره چند قسمه و توضیح میدیم خدمت شما اما اونی که امروز بررسی میشه تا جلسه قبلم شروع شد سیره هایی که ازش حکم به دست میاد حکم شرعی به دست میاد من یه لحظه نگاه کنید اگر من به شما بگم که سیره چه کار کردی داره به چه دردی میخوره سیره اقلا که قبلا هم خوندین الان هم امسال وارده شدیم به چه دردی میخوره سیره شما چی میگین چه چیزی دارید ارائه کنید سیره اوغلا مثلا که می‌گی مازه قرآن به چه دردی خورده حدیث به چه دردی خورده خبر واحد به چه دردی می‌خوره شاید مثال خبر واحد بهتره روایت ها خبر واحد ها به چه دردی می‌خوره شما چه می‌گید می‌گید ارزش هیچ حج. پرداشناسی هیچ مشارق پردازی حالا همین سوال در مورد سیره اوغلا سیره اوغلا به چه دردی میخورد؟ شما چه می‌گید که ازش؟ ازش حکم به دست میاد. حکم شهری به دست میاد. خب همین اولین کارکرده و تفسیر ما اولین قسمش همین میشه. سوال دیگر. آیا این سیره سیره اغلا غیر از این کارکرد کارکرد دیگری داره یا نه؟ کارکرد دیگری دارد یا نه؟ جزبوش. بله جز به دست آوردن بردن کارش کارچرد دیگری دارد یا خیلی؟ نزارتون؟ چیزی تو نیست درسته؟ تو ذهنمون نیست ولی همینجا به شما بگیم سیره در مورد موضوع هم به در میخورد نه در فقط حجم بعضی وقتا موضوع حجم شنیه ما به سیره مرتبطه تا ترجمه یعنی از سیره حکم به دست نمیاد ولی موضوع حکم شرعی ما با سیره باهاش برمیریم ممکنه سیره برای ما موضوع رو منقح کنه مثلا روز مثال زدم لباس شهرت دقت کنیم از این دو تا قسم از این دو تا قسم بچن تشخیص بدید کدوم مثلا فرض کنیم ما با استفاده از سیره و به این نتیجه بلسیم که لباس شهرت لباس شهرت جایز نیست لباس شهرت جایز نیست چرا؟ چون اقلا لباس شهرت رو جایز نمیدونن اقلا لباس شهرت را بر نمیتابند مثلا مردی با دامن زنانه نبینه بکنم قبول نمی کنم بهش و مقابلش باید میستم زن با لباس مختص مردان بله می بر و نمیتابند سیره اوغلا اینه که این رو انجام نمیدن و مزمتش میکنن. حالا از همین ما حکم شر رو به دست بیرم بگیم خب پس شاره هم اتمن همین رو مزمت میکنه و قبول نداره و حرام می دانن این کدوم قسمشه؟ شد؟ قسم اول یا دوم قسم؟ اول یا دوم یعنی در واقع اگه قسم اول دوم یا تو نیست نو؟ آیا این سیره در حکم به درد خورد یا در موضوع؟ در موضوع در حکم یا موضوع هم موضوع در درست کنم حکم دادی؟ این بیشتر حکم بود دیگه، حکم رو به ما داد. یعنی میگه لباس شهرت چون اغلابر نمیتابند، مزمتش میکنند، ممنون چون خدا هم نمیخواد این لباس شهرت، اما اما همین لباس شهرت حالا چیچی چی هست که مثال زدن. مثلا مردی لباس زنانه به بره بشه این تشخیصش و روشن کردن این موضوع که لباس شهرت جایز نیست فرش کنید حکم شاره اصلا از سیره اوغلا به دست نگورده از جای دیگه به دست آوردیم بردیم در روایتی آمده است که لباس و شهرت حرام هم خب این لباس شهرت حرامان باش حکمش مسئله نداره ولی لباس شهرت حالا چیچی چی هست چه چی شکلیه حدود و سغورش چیه آیا مثلا هایی که الان پیدا زن و مرد مشترک مثلا کت میبوشه زن مردم میبوشه این لباس شهرت هست یا نه روشن شدنه این موضوع هم با سیره به دست میاد به سیره نگاه میکنم این اینا لباس شهرت میدانم این لباس شهرت نمیدانم کشم مطلاب موضوعش مشخص میشه موضوع پس کار کرده سیره اغلا در دو است یک به دست آوردن حکم دو روشن شدن موضوع حالا خود روشن شدن موضوع یعنی این رو تعبیر کتاب این هست سیره هایی که به موضوع رفت داره کلی <تصفح> میگین <تصفح> فقط منده شدن نمیگیم چون جورای دیگرش هست میگم سیره هایی که به حکم ربط داره از اون حج رو به دست بیاریم و سیره چه به موضوع ربط داره این دو قسم سیره در دست ماست اینو چه گفت برای شما اینو که توضیح داد دو قسم سیره رو بعد میگه که حجت بودن سیره در هر کدوم از این دو قسم به چه سببی میتونه باشه حالا اونو میرسیم با هم صحبت می‌کنیم در موردش فعلا این تقسیم رو به سرانجام برسونیم من عبارت چون فاصله افتاده بینش و دوستان هم یه دیاز رفقه ها تشمیه از همین اول فصل اول می برای رفقه بسم الله الرحمن الرحیم الفصل اول اقسام و سیرل و قلائیته و فصل دوم منات و خجیت ها دو تا بحث در فصل اول خواهیم داشت فصل اول چند سف هست؟ پشش است هست یا پشش تفیه هست توی این 7 صفحه همین دو تا مطلب رو خواهیم داشت اقسام و مناط تنقسم مسیر ال اوغلیتو الى قسمين القسم القسم الاولو السیر الواقعت فی طریق اثبات حکم میبینید اثبات الحکم الشرعیه قسم اول هم جلسه قبل هم اشاره کردم بهش. قسم ثانی رو هم ببینید از قسم ثانی سببه بعد از سیرول مرتبه تو به موضوع حکم شریع این دو قسم من با توضیحاتی که خدمت دوستان ارائه کردم میتونید ملاک تقسیم رو به من بگید ملاک تقسیم چیست؟ الله فرسم جو به نویسم نبود چه تقسیم سیره ها به دو قسمه سیره هایی که در حج ازش یعنی طریق است... اثبات عرفی شده این میشه سیره هایی که به موضوع مرتبط ملاچش به نظرتون چی میده آقایو ملاچ ابو تشری ملاچه تقسیم سیره به این دوتا من از می خواهد. یعنی این یعنی یه و موضوعاتی بهش بسیاری چیه در یک چلانو بگو؟ اون چیزی که ملا که تقسیم چیز جوابش یک چلانه میشه. اخیر اسکریای، متهنی، دیگه. ببینید الان میگم چه؟ انسان تقسیم می شود به سی پوست و سرکست و سفید پوست و زرد پوست و. میلا چه تقسیم چیه؟ رنج پوست رنج انسان پوست. رنج پوست. حالا اینجا تقسیم می شود سیره به دو قسمه سیره که در ث حکم شری به کار میاد، که در موضوع به کار میاد به شرعی شرع ملاج تقسیم شرعی یعنی او او او او میام اون که رسواشه؟ خوش میام موضوع. و قسم درست ملاچ. ببینید مثلا یعنی نشریه دست اشاره هست درو دست اشاره نیست اشاره اون خواص این دو قسمه. ملاچ ترس. ببینید اگر تو تا... تو منطق ملاک رو خوب کار نکردید خیلی روشن نیست اصلا خود سواله که تو روشن نیست چی گفتی آقای؟ قلیم. چی اساس دلیل نداره دلیل بودن نه ها حجته نه ها معنا تو حجته چخه این دیگه این اساس کار کرده دیگه گفتم که کتابم نگفته کاش میگفت ملا تقسیم به اینجا سیره در راه اثبات حکم شرعی به کار میاد به کار میاد یا به موضوع مرتبطه یعنی تو موضوع به کار میاد در مورد موضوع بکار. این ملاچ تقسیمش کارچرده سین است پس اگر اینو میگون خیلی راحتر شاید تو تو میمون که سیره از حیث کرد به دو قسم تقسیم میشه حتما تو تقسیم های که میخونین تو کتاب ها ملاچ تقسیم رو خودتون کار کنید حالا چه تو کتاب گفته باشه چه نگفته باشه القسم الاول و از سیر الواقع فی طریق اثبات الحجم شرعیه یه سوال لکاتی تو عبارت هست این آدم میپرسم چرا میگه اثبات حجم شرعی هم میگو اثبات حجم دیگه شرعی بودن لازمه یا میتونست حذف بشه حجم فقط شرعی که نیست آره دیگه حجم فقط شرعی نیست پس لازم نبود اینو میگی تو اگر شرعی نشون تو لازم بود چرا؟ ما اون که خدا گفته از سیر رو در واقع سیر وقتی به عنوان دلیل بر حج به کار می‌بریم، قطعاً دلیل بر حج شرعی باشه. چون من سایر حجما رو می‌خوام چیکار؟ من در راه استفاده و استعمال حج شرع هم دیگه می‌بینیم در این مسیر رسیدن به حکم شهر یک ابزار خوبی اینجا پیدا کردیم به اسم سیره در نتیجه سیره رو در راه رسیدن به احکام شهر ازش استفاده می‌کنیم. حکم شهر هم دقت کنید در واقع برای ما دو فضاست حکم شهر یکیش حکم شهری فتحی حلال و حرام این یکی حکم شرعی که تو اصول فقل لازم داریم میتونید مثال بزنید برای یک حکم شرعی اصولی حکم شرعی اصولی حکم شرعی اصولی کلونتون نیست با بگم بگم که ببین مواجهه نشد با هست. علتش اینکه تو متن دیگه ببین حکم شرعی بوده. حکم شرعی یا فقهی مثل حرمت لباس شوغت. پوشیدن ده. همی الان گفتیم. جواز اكل اون میوه که از دیوار به این ور هست. دیوار با ازش بیرون زده. سیره الان ما رو به اون رسون میشه حکم شرعی فقهی. و امثال یا به قول کتاب که جلسه قبل گفتیم پیزون میرید از بیاغون جمع میکنید اون مال خودتونه دیگه این مال خودتون رو حجم شعری فقهیست وزی هم است که اون مال شماست اگر اصولیش توست به اینکه مثلا خبر الواهد حجت آه همین خبر الواهد حجت است یا نه؟ تو اصول میخونید، این حجت است نزد چی حجت است؟ نزد خدا رو داشتیم این ورضا نزد مردم حجته نزده خدا رو داشتیم بعد رسم کردیم آیا قیاس حجته است یا نه آیا کسری حجته است خیر نزد چی حجت نیست نزد شاره امام صادق (ع) ببینید اینا احکام شرعی اصولیه احکام شعری فقی هم دارد احکام اصولی حالا میگیم تو این قسم اول سیره ها در راه رسیدن به حکم حکم شعری اونم دو نوع شعری فقی یا اصولی هستن قسم رو شد شده ببینید نباره المقصود و به حاضر قسم من ما یراد و بهی علال حکم شرعی استدلال به آن سیره این ما مرجع زمین بهی هستش باقی طرح این هم مذکر و علال مستاقش سیره هست علال حکم شرعی بر حکم شرعی خب حکم شرعی دونو یا فقی یا اصولی توجه داشته باشی حکم شرعی فقی همون احکام شرعی احکام فرعی اصولی همچن همون احکامی که تو اصول خوندیم چما یستدلالو همونطور که استدلال میشه بود. علاوه مملکتیت الحیازت شرعان بسیرت ال وقتی من میرم حیازت میکنم چی را جسم منولی رو مثلا هیزم برمی از بیابم. شنی کنار رود خونه رو بر بداری می مییم کممپنیسی میاریم ازش استفاده به خونه درست میکنه ماسه میاریم خونه درست میکنه مثلا خب اون برداشتی آذرت کردی اوقلا میگهن ک هم توچی برداشت مال خودش میشه اما تو خب بعدها در جامعه اسلامی ممکنه الان تو از های جدید یه مقدار عوض شده ها مثلا اینجوری نیست که هرچ از هرچی برداشت مال خودش بشه بعضا می, بعض می که نجز منابع طبیعی هست اوگال نداریره الا هموناش که هیزون برداری یه سنج بردارید یه ماهی بری از رودخونه شکار کنید اینها دیگه مال خود اون شخص ها اون حیازت کننده میشواد این سیره اوغدایی است خب از این استفاده کنید از این استفاده کنید فقه کار کنیم سیره داری برای چه منهاز شئیئا او مال چش میشواد خب این سیره اوغدایی است این مقدار به درد میخوره کافیه یا ادامه بدیم؟ کافی نیست چون این سیره اغلاست حکم اغلاست ما که رساله اغلاییه که نمی نمی نمی سیم رساله توضیح مسئله شرعی می خیلی خوب از این سیره پل می زنیم به حکم شرع می‌گیم حالا که اغلا اینجوری انجام می با یک فعل و این فعالاتی که بعدا خواهیم کند معلوم میشه شارع هم همین رو قبول داره یعنی میگه هرکس حیاظت کند یک مالی را مال خودشه مملک بودن حیاظت رو شارع قبول داره خب این خوشبشریه فکری شد یا اصولی؟ فکری شد دیگه خوشبشریه یعنی یا اصولی وضعی هم هست تکلیفی نیست یعنی حلال و حرام نیست اینو چه من اون را قبول دارم فکری هم هستی اصولی نیست مشخصه مثلای است. خب کما یستدل استدلوا الا مملچیه یعنی حیاظی کن انجام بدید شما را مالک میکنه شرعاً حقم شارع هم هست به سیرت الاغلایه چه قائم است الا ان من حاز شيئا من الاموال المنقوله المباحه اموال منقوله مباحه البته باید باشه علا غیر منقول و غیر مباح اونا دیگه بحث فقهی اونها رو کار نمیدیم اونها نمیشه بحث ها داره دیگاه دا حجمش رو باید در جای خودش در فقه ببینید ملکه ها مالکش می شود فل این یه مسئله است در فقه بحث میشه حالا یه مثال برای جایی که از سیده برای حجم شریع اصولی استفاده می کنیم و یستدلو اینم مثال دو علاهجیت زواهر شرعن ببینید زواهر حجت است نیه حکم است شرعن حکم شرعی شد منطقه چون زواهر حکم فرعی فقی که نیست اصولیه بذاره میگه این مثال برای این اصول به سیرت اقلایت قائمت علال عمل به ها فعل اصول علال عمل به ها اونجای برگول بذارید از عمل به ها این فعل اصول اشتباه نفره متعلق به یستدلوهه عمل نه یستداللو یعنی در علم اصول استدلال می شود بر حجیت زواهر شرعن به وسیله سیره اغلاییه که قائم بر عمل به زواهر است خبر واقعا هم همینطور چیزای دیگه هم اون روز زدم استصحاب هم می تونه استدلال ما با سیره باشد یعنی با سیره اغلا به استصحاب به شرط اینکه که اغلا همچین ای دارد داشته باشم نعم تادیو ستاتلو فلفقه لاثبات الحجیت لبعض به بسیط العقلائیه میفهمد که بعضی اموری داریم در فقه به وسیله سیره عقلا اثباتش میکنیم یعنی سیره عقلا میاد میگیم طبق این سیده اوغلا فلانشه حجت است در فقیل یا اصول در فقیل مثالای قبلی تو اصول بود به خاطر همین مثال نعم اوبار اینجا این مورد بعدی رو نعم اوبر. استدراک میکنه هر وقت تو کتابای حوزنی نعم دیرید باید اون جلوش بنویسید استدراک از چیست اولی ایسی میگه مثلا میگه طلبه های این مدرسه همهش رو درس کنن؟ بعد میگه نه هم بله حالا توشون یه چندتایی ممکنه پیدا بشه که درس کن نباشن این نه استدلال که از اون مطلب میشه حالا اینجا هم همینطور ما گفتیم برای حجیت توصول به سیره چی کار میکنیم؟ تمسل و میگه نه تو فقه هم داریم بعضی موارد رو حجیتش رو با سیره اثبات میکنیم پس چرا تو اصول نوردیم اونها رو حجیت و اون موارد رو؟ اون هود رو. میگه چون اونها کاربردشون در کل فکر نیست که به اصول فکر منتقل میشه چون تو بعضی از بخش های فکر فق فقط کاربرد داره محدود هست لذا تو همان فکر برثش رو میکن مثال میزنیم مثال نظر خودش رو حتما یادداشت کنیم. مثال که بله؟ روش برمسید استدلاج البته خیلی مهم نیست اینجا خیلی مهم نیست استدلاج هست استدلال بسیره بر حجیت بعضیون دارم این حجیت من حالا ماجیک نبود دیگه نه ببینید با من همراه شد میگیم سیره نوع هم بلکه اینجا قسم اول برای اثبات حکم شهریست حکم شهری یا فقهیست یا اصولی بعد برای اصولیش مزاز هر گفت مثلا هجیت زواهر را با سیره اثبات میکنیم شرعن هجت است؟ با سیره اثبات بعد میگه نه البته بعضی چیزان هم رو تو اصول نه تو فعل با سیره اثبات میکنیم این اینو این رو نکنیم چی آخه این حکمه چیز نیست این یک قایده است قایده است که به اصول میخورد که تو اصول بحث میشه ولی چرا تو فقه بحث شده؟ میگه علت اینکه وسیع نیست موارد محدودی رو شامل میشه مثل استثابیست که کل فقه رو شامل میشه ببری تو اصول مثل برایتیست که کل فقه رو شامل میشه و ها كذا. لذا حجیت یه است یه قضیه است ولی چون محدوده تو همه فقه بررسمی کنیم اینو میخواد بگه نه قد یستدال و فیل نه در اصول استداکش هم همینه که تو اصول چرا بزنیم حجیت زواده رو میدید نه بسان چرا میزنیم بسان قد یستدال و فیل فقه لی اثبات حجیت یه چیز دیگه ای بعض الامور نه این زواهر رو اینا به سیرت الاغلاییت لیکن هازا انما یکونو فی مکانم مختصم به بعض ابواب بعض العبواب الفقیه چون تو بعض ابواب فقی هست دیگه توصول بحث نمیشه دون جمعیه ها نه در جمعیش یا جل ابواب فقی باز اگر جل هم بود خوب بود می آوردیم توصور. کل بود حتما می آوردیم توصور. ولی نه کل عبا فقی رو شامل میشه نه جلش رو تو بعضی چند تا دو سه تا باب فقی رو شامل میشه به خاطر همین تو فکر بحث میشه و الا اگر کل یا جل مباحث فقی رو شامل میشد یطنه و فیل اصول آنطن در اصول مطمئن شد پس از این عبارت برمو شد که اون استدراج بیداری اینو چون تو عبارت نیست استدراج از بحث در اصوف یعنی ما برای بس حجیت حجیت از پرست حجیت در اصوف خق مثالش موند مثالش رو ارز میکنم خدمت ببینید الان این وسیله مال من در دست من مال من. من چه گفتم این مال خودم میخوام بفروشم به شما شما مال خودته هسته؟ آره مال خودم این حرف رو میپذید یا میگید نه معروم نیست که مالتون چه تا میگهد دو دست منه؟ من, من میگم مال منه بعد شما میگهد نجسه یادم هم نه نجس نجسیست چیزی کسی هرکی توش داره میگم نه،, نه هیچی مال خودم پاکه هیچ مشکلی هم نداره رو میگم میتونم به شما بفروشم اینا کتاب منه این حرفا رو میزندم میپذید یا نه؟ میپذید دیگر میپذید اما من بیام در مورده کتاب شخص دیگر بگم اون کتاب که دست فلانیم میبینید اون نجسه یا فلان اینجا حرف شخص دیگر نه اما حرف شخصی خودش زلیده صاحب اون چیه یعنی تو دستشه اون رو او اغرا از همون اول سخن زولیت رو در مورد اون ملکش میپذیرن این یه اوغلا است. خب؟ این رو ما میایی بررسی میکنیم با استفاده از سیده اوغلا شرعنش رو هم ثابت میکنیم میگه پس شرعن هم زولیت هرچی میگه بگه مقبوله هست اغلا ها حکم کردن عمل کردن سیده رو بهش انجام دادن عمل شرگیش هم استفاده می‌کنیم حجیت سخن زلیت را کسی که گر بر به اینچی داره خیلی خوب این الان یه قاعده نشد مگه حجیت یک قاعده‌ای رو بررسی کرده می‌گه خب چرا تو اصول بحث نکردی تو فقر بحث میشه. میگیم چون این زلیت خیلی مثلا تو تهارت و اینا شاید لازم بشه تو بی و اینا ولی تو سلات تو سوم تو امثال اینها حدود بیا اینها شاید خیلی کار بار نداشته باشه لذا چون مختصر بعضی ابواب است این راضیه باصیره چه بدستم اینو تو فقه بدسی می‌کنیم میتونست تو اصول بدسی بشه پس اونجا مثال بزنید بنویسید مانند اون قضیه استدلال فلفل که نوشته ریسوات الحجیه لبازرو اونجاش بنویسید مانند اثبات حجیت برخی تواید فقهی بالخي با استناد به سیره اوغلايي تا فتره مثل اثبات البته یاد نداره اوغوز مثل اثبات حجیت قول زلیاد بسیار خوب سیری اوگلان الان یه خط بالا زن بوجیهتی زواهر رو بسازد نه اصلا معلوم که برداش بیادم که میشه و تو اصول خیلی برس نمیشه یا برعکسشون برعکس میشه و تو خیلق برس نمیشه خب دوستان جواب دیدهشون تو هر روطاش برس میشه دیگه هر روطاش هست تو اصول هم حسابی برس میشه تو خیلق هم حسابی برس میشه اصلا اون نعمه نعمی که شروع کرده درمیم اصلا بز بخص باز میشه بزی از این سوالش بخص میشه از اون نعم به بعدش رو اگارت آره جرفتید نه اون قبلش هم اگر دقیقت کنید مشخصه دیده حجم هم تو اصول هم تو فرد موردش ما با سیده کار داریم بله نه کامل توزید دادم اینو آره اگر حواستون یه مدد بعضی جهانش بوده یا نه نمیدونم چی باعث شد که این سوال رو بپرسیم نه تو هر دو کاش هست بسیار خوب آقا جان قسم اول رو گفت قبل از اینکه قسم دوم رو بریم توش منات و رو میگه ببینید عبارت رو منات و خجیت هازر قسمه ملنه سیرته عبارت عبارت عنوان این بحث منات حجیت حاضر قسم نسیره اصلا خود این رو باید معنیش رو توضیح بدن براتون تو حسن چلمه ای نداره چه نخونده باشید به این منات رو کندید میدونید یعنی چی؟ حاضر قسم نسیره که موشن هست منات رو میدونید ولی با چون احتمال میدم روشن نباشه قبلا براتون الان توضیح منات حجیت یعنی یه اقلایی او از اولاد کلاس الان فراتون این مثال زدیم که ازش خوش به شریع رو بهره بردیم اثبات کردیم میگیم آقا جان رباس شعرت مضمون مزمون میدونن پس شرعن هم حرامه یا مکروه یا حرام که بعدا اینا رو بس کنیم آقا جان از یا جنب ما خودت اقلاییم پس شرحن، شرحن هم مال خودتون این هم خود رو اغلا عمل میکنم پس شرحن هم باید عمر بشون هواهر رو اغلا عمل کنم پس شرحن هم باید این هم مثال فقه هم مثال فقه هم مثال اصطوری زده بگم حالا صحبت صحبت اینه سیره اغلای این شکلی چه میایم ازش حجم شعری را اثبات میکنیم به چه دلیلی یعنی الان میریم تو درون این استقلال کنان کردی یه نفر میپرسه میگه آقا جان این میگه سیره اوگلا داریم پس شرح اینجوریه سیره اوگلا داریم پس شرح آخه سیره اوگلا میتونه شرعی رو به شما برسونه حجم شرعی رو به چه سببی سیره اوگلا میتواند اثبات کرده حجم شرعی باشد به عبارت دیگر با چه دلیلی سیری عقل ها حجت است با چه مناتی منات یعنی دنگ با چه مناتی سیری عقل ها میتوانه حجب رو به شما اثبات کنه یعنی سیری عقل اینقدر زور زورداره که حجب شریع رو به شما برسونه میگه بله میگه چه دلیلی؟ رو چه حسابی سیری عقل ها میتوانه حجب رو اثبات کنه بر شما ما در عالم صبوتی یعنی احتمالات می آن که سیره اقلایه اگر اینجوری باشه خب معلوم اثبات می اگر اینجوری باشه باز اثبات می اگر اینجوری باشه باز اثبات می از این توضیحات من مطارق شدید اگر نشدید بذنید خوده کن. ببینید کند او... من میگم که سیره اقلا می گوید که درفنانی که می گوشت بیرون تو مسیر اومده کوچه. اون اغلا میرسن ازش میچینن میبرن این سیره بوده از ادبا خب پس حکم شهری هم همینه یه نفر میپرسه که آخا جان اینو اغلا انجام میدن چطور ازش پل زدی به حکم شهر رو چه حسابی حکم شهر رو از او استفاده میکنی؟ چه جواب میبرید؟ مناتی درست منات جواب این سواله حالا بگیم ببینم روچه حسابی سیره اوقللا می حکم شهر را برای ما ثابت کند یا بهب روچه حسابی سیره اوقللا و جیت می تواند داشته میگم می چون فعلا احتمالات رو میگه بعدا اینا رو واردش میشیم و بحث میکنیم فعلا احتمالاش رو بگید مثلا مورد اولش رو مورد اولش رو که تو زیدتون شاید نیست اینو عرض میکن من و چتوبه صابر مزفر و اینها شما مورد دوم یا سوم رو خوندید در واقع رو سوم رو. مورد اول رو ندیدید اصلا سیره واقعا هست اینا قدم بحث شده آره, آره. اینها رو حتما باید سوالات درس رو پوش کنید بعضی از سوالات ذهنتون میاد اینا معروف به جلسات قبلی هست چون فرصت نیست ما یه متاسفانه نمی و اگر فرصت بود من خوشحال می شدم خوش. خب ببینید سیر اقلا حجیتش به خاطر الامر الاول ببینید الامر یا به خاطر این امر اول میتونه تونه حجت باشه یا به خاطر امر سانی یا به خاطر امر سانست از این تا امر شما باید بگیرید علت حجیت سیره رو امر اولش که شاید بزنید تو نمیرسه اینه ببینیم بعضی وقتا اوقلا سیره ای دارند که خودشونم یقین دارند یا مای فقه ها یقین داریم که این سیره درسته این سیره صحیحون وقتی یقین داریم حاضر سیره صحیحتون دیگه نیازی به چیز دیگری نیست وقتی یعنی کاریم صحیحه میشه حجیت دیگه میشه حجیت حجیت برای سیره چرا چون یعنی داره. مثلا بعضی هم میگن که آقا جا چه دقت کنیم سیره هایی که همه انسان ها همه اغلا حالا دوست اغلا یعنی همه انسان ها البته بعضی وقتا کلهم بعضی وقتا جلهم همه انسان ها یه سیره ای رو از همون اول تا آخر عمل می کنن. مختص زمانی نیست مختص مکانی نیست مختص انسان های خاصی نیست همه انسان ها این رو عمل کردند. خب معلوم چه این سیره درستیه دیگه اگر درست نبود اینجوری عمل نمی شود. مثال می زنم ببینید مثلا همه ما انسان ها از اول از اول تا آخر سیره ما این است که فردی زندگی کنیم یا اجتماعی؟ اوغلا سیره شون چیه؟ زندگی اجتماعی است. خیلی این سیره اجتماعی مختص زمانی بوده؟ مثلا از هزار سال پیش دیگه اجتماعی شدن. قبلش تکی زندگی می کردن ازدواج نمی‌کردن. ولی مثلا ازدواج نکنه منقرض میشه. معلوم میشه از همون اولین انسانی که بوده هم اجتماعی بوده. ازدواج می بچه دار می بعد بچه های بچه هاشون همه با هم بودن دیگه. مکان خاصی مثلا بگیم توی آسیا اینجوری بود اروپا اینجور هم نه هم چنین سیره ای وقتی داریم ما بهش نگاه میکنیم ما یه فوقه ها نگاه میکنیم بابا قطعاً این سیره درسته این سیره صحیح. وقتی دیدی قطعاً این سیره صعی خود به خود حیت رو شاف شدیم. او نیازی به چیزی نیست؟ آیا این سیره؟ نیاز داره در مرآ و مصمت امام باشه امضا کنه این رو بر ما حجیتش رو ثابت کنه این ها لازم هست؟ نه لازم نیست یقین داریم این صحیحه لذا منات اول در حجیت سیره است که ما سیره داشته باشیم یقینه به صحتش داشته باشیم برگو بر حجیت میشه این رو تو مزفر اینا نداشتیم از کجا نمید رسمی یقینه همینالا این گفتیم توضیح گفتیم. سیده ای هست که همه اوقت همیشه و در هر زمانی و هر مکانی بکار بردن این رو ما افقاها نگاه کنیم یعنی به دام که اون دوباره رو جایستان. سیره برگرم چطور برگرم؟ یعنی اهم اغلا بپذیرم بچه اغلا بپذیرند همین که اغلای عالم بپذیرند خودش اگر که بناش عرب نباشه سیره باشه دور میشه. من یعنی که رو اگر مثلا بگیم بنای عرب و ضبوریه یعنی نبود ای که این مطلب رو بپذیرم خواهر خب. رو سرزم کنند چونه حال یا این مطلب بنامه یه خورسهات شد سلطای شمزمیکار رو بو یک چیزی، یک تنگیت از سال همین سوال رو پرسید، چیزم همین گفتن که وقتی همونم که در زمان جاملیت، آرزم نمیذر که تا به امروز کشتن دخترهای یک سیره آقلایی شد دخترم اصلا این سیره آقلایی هست یا که گفتن که بله این سیره آقلایی هست در خیلی آنجا شکایت که یعنی که آنه ما هست کشتر دکتر و اگر که یک رس بود بودن اما آله بودن منجان بودن که بس درست بودن همین میکسی رو بودن چه نبودن؟ اینجور نبودن بهتا حالا مثلا فرض علا حالا فرضی سرم امروز هم مثلا استمرار داشتیم. اگر که امروز هم ادامه پیدا می گفت یک سیده است همه مردم کفتن ولکن موده در حسیت ما بهتمن بودن از دارت. که یام یعنی خودو و غذاداریو فراهم کنیم یعنی اینو عجب برنامه یه بیش بنای اره چه تاسیس باشه و ضروری باشه خلاصه اول در قانون خصوص گرفته بله بله سوال شما در واقع اینه که ما از کجا میتونیم یقین پیدا کنیم که یک سیرهی واغا سیرهی صحیحی هست و نیازی در نتیجه حجیت و نفام نداره خب این معلومه دیگه ببینید به قول خودتون عقل ما نگاه میکنه میگه وقتی یک سیرهی همه اقلال در همه مکان ها و همه زمان ها تا روز قیامت این, رو این رو دارن همچین سیره ای رو این معلوم میشه که یا از فطرت انسان برخواسته یا از طبیعت انسان برخواسته یعنی طبیعت انسان یه جوری که نمیتونه غیر استماعی زندگی کنه یا از فطرتش خیلقت انسانی جوری بوده عقل ما میگه که پس همچین سیره ای که برخواسته از فطرت و طبیعتی انسان ها بوده این نمیشه شه چونش مثل سیره برای ازدواج عرض کردم سیره بچه دار شدن زندگی استمبال کردم اینها بله درونش با یک چیز دیگه ای درونش دیگه سیره که نمیتونه باشه بگیم چون سیره داریم که این سیره رو پذیرفتن اون که نمیشه با اقل و اینها بله اما اون بحث زنده به گور کردن بچه ها و اینها که بود اولا سیره نبوده کار همگاری نبوده کار نمیشه. دختر همه کار نمیکردن اصلا دکتر نداشتن وقت همه زند داریم اونجا این ها پس چیه؟ تو بعضی از موارد بوده گویا تو خود مکه و خیلی نبوده مال تبایل اطراف و اینام بوده ثانی هم ما اون رو نمیپذیره اصلا فرش کن از همون اول همه میکشتن دختراشون الان اقل ما با این زلط پس یقینه به سهت پیدا ده ده بله این درونش با اقل و میشه بله درست. همین دیگه همین بحثه ایشون همین همینو هم مشخصه یعنی ما عقل ما عقل ما میگی که آقا جان این سیده ای نیست که یقین به صحتش داشته باشی عقل ما میگی که این خلاف فطرت خلاف طبیعت خلاف خب اولا مشروب رو اینجوریست که هفت میلیاردش بخورن نه خب مسرحان هم یهدهشون میخورن اونا خیلیاشون هاشون نمیخورن اینا حالا منظور سیره ببینید من سیره ایچه من اینو تمام کنم سیره ایچه شعاره نیست دیگه بهش نظام نمیگیره ما مثلا ممکن خیلی سیره ها باشیم که غلط هم باشه به صلاح فرز فرز این مطقیقی بزرگیشون میگن دردانی ها کنه به سیره شده باشه الان فرز نیستی سیره شده بعد از خاطر بالاخره ما یه سیره ای باشه اصلا شما ممکنه بگیر اصلا همچین سیره ای اصلا نداریم که انسان خود به خود سیره رو ببینه یقین کنه که این سیره درسته شاید اصلا همون سیره زندگی اجتماعی نرم رد بشه فرض دیگه الان گفتم بحث ثبوتیه نمیخوام بگیم هست میخوام بگیم اگر اینجوری بود حجت اگر یقین کرد سیره ای صحیح هست خود به خود بهش عمل می نیازی به شاره و اینها نیست که بیاد برایش جلد جلد حالا اینو رو هم تمام کنم این ارزاد تمام نشد ببینیم هایی که هم... گفتیم همه انسان ها در همه مکان ها و در همه زمان ها بهش عمل کند میتونه کاندیدای مثال برای این مورد باشه حالا اینو کنم. این رو تمام کنم غزقای میکنم این سطح اقلن تمام چه منال بله منات و حج من الواضح ان اون منات رو توضیح دادم حتما بنویسید و بعدا یادتون میرین بحثش چی من الواضح اننا نحتاج علی اثبات حجیت حاضر قسم من از سیرت الى اثبات اهد الامور سلاست طالیه یکی از این ستا ثابت بشه اون سیره اثبات حجیت میشه الامرال اولو چشفها چشف سیره ان صحت ما بنا علیه الاقلاع این سیره خودش چشم می کند که اینی که اغلا روش بنابه داشتن این صحیح بوده که مثالش رو کردم و ادم خطعه هم فی زالک و هین ازم لا چی شد وقت شد خب یه سراد که چیست